بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشخة الأنبياء و سيد المرسلين و آلية و صحبية أجمعين أما بعد جلس يقول أجتبت أم سلمة وحجرة في سي مدينة و بعد أجتبت أمام ربنا قطاب و حجرة في سي مدينة قبل الله صلى الله عليه وسلم كذلك وحجرة كذلك وأجتبت أن تظهر لحجرة صلى الله عليه وسلم چه وقت از از مکه خارج شدن به مدینه و همراهی هم، همراهش کی و قصه خروجش از مکه چطور بود؟ اون چیزی که امام زهری از ائمه تابعین نقل می‌کنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و بعد از حج سال دوازدهم ام بعد از حج مابقی بقیه حج رو کامل میکنه محرم صفرم میمونه در مکه بعدها تكون بسيك مشاركين بلديه كمشاركين قصد وعزيمه قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ميكونه ورسول صلى الله عليه وسلم عزم هجرات آيه القرآن هجره ميكونه اصل اييهي كه در قران اومده رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف الله خداوند در قران كريم ميفرماید و ايذ يام الله والله خير وقتی که مشرحیله به کار میندافتن مشرکین برای دع برای که دعوته رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه بذارن و نذارن که رسول دعوت بده و وقتی که قصد آزار و اذیت کردن و همچنین قصد قتل او کرد قصد قتل رسول الله صلی اللہ علیه و سلم کردن او بیرون کرد یعنی خواستن رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج بکنن و بیرونش بکنن از کرد. قبل از اینکه این توطئه ها بشه قبل از ايه مشرکین برنامه ریزی بکنند رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون عظیمت میکنند بعد کروج اونم همراه عبوبک رضی الله عنه بله روایت ها متواصل در این که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه از مکه خارج شدند و دوشنبه هم وارد مدینه شدند بله روز دوشنبه رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله روزهایی هست که روزی میگرفتند برای چی؟ حالا این روز روزی است که حضرت خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند روزی که بر من روزی که من در این دنیا آمدم، وقتی که سوال میشه چرا دوشن به روزه نمیگیری میفرمایند من در این روز به دنیا اومدم و دوست هم شکر و سپاس خداوند بگیرم یا به جا بیارم به خاطر اینکه در این در این روز به دنیا اومدم این خاصه الله صلی الله عليه و و ما هم برای اثبات حبمون محبتمون به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هر هفته به یاد ولادتش غیر از این روز بحث از تنها بلادتش نیست بحث هجرتش از مکه بحث برودش به مدینه و این تغییر و تحول در دنیای اسلام با هجرت و صلی اللہ همینی ها نعمت ها و منتات که ما باید همشه ها سفات بزارش باشیم اما این که ما بیاییم الانی که روی الاول دیگه چیزی نمونده که دوباره واردش بشیم یا واردش کدیم روی الاول چند روز دیگه جشن ها و دیو از اون چیزی که نمونده و میبینید دیگه حالا جشن ها و نمیدونم شیرینی ها و در صورتی که دو تا مسئله هست یک بحث از اینکه رسول الله هم در روزی که به دنیا فوت هم کرده چرا ما شادی بکنیم به خاطر اینکه در این روز فوت فرج آیا مؤمن باید چنین باشه این اولش دومش اینکه یعنی چطور مؤمن بخواد اجازه میده که در این روز شا... شادی بکنه در صورتی که در این رسول الله هم صلی فوت شده این یک اینکه شرموا وا اینچنین باشیم که ما سال به سال اظهار محبت مصطفی صلی الله علیه و چرا ابن شرم هل هسته سپاسگزار و شکرگزار و اینچنین روزه نگیرید بله مؤمن حقیقی اینه که محبتش حقیقی باشه و گذار باشه و رسول الله صلی الله علیه و آله عشقش باشه یعنی اگر ما دعای محبت مصطفی صلی الله و داریم باید یترجمون باشه لقد کان لک فی رسول الله و وطن برای شما در وطن اول اگر واقعا محبتش دارید باید اون الگویش مش اگر واقعا ندستی داری باید الگوتون باشه بله الان بحثش بحث مفصله بحث 12 ربیع الاول اداره شادی و نمیدونم ختم شهادت بحثش مفصل الان جاش نیست ما احکام شرعی جو بحثش نمی‌کوین بحثمون الان سیرت مصطفی صلی الله علیه و آله اینو فقط گفتن که تو ذهنتم بمونند دوشنبه رسول خدا در مکه قاره شدند و دوشنبه هم وارد مدینه شدن. این که ظلال های متواضعی که وارد شده و اساس هجرت از اونجا شروع میشه که رسول الله صلی الله علیه و salam چهره تن و کل بودند وقتی که خداوندش بهش دست بود که به هجرت بره یا هجرت بکنه صورت خودشون در veste زره پوشانده بود وسط زره مانند الا خیلی ها فکر میکنند که شب تاریک که شب ریزی بکنن ولی که رسرات الله ما حقیات هم چ این کارو نکردن روز وسط روز ظهر حالخصوصن اگر ما ببینیم خیلی از جنایت هم بیشتر در وسط روز وقتی که دنیا ثابت و آروم خصوصا جاهایی که مردم و کارن و ظه میرن استراحت بکنن معمولا این وقت وقتی که انسان ها ازش استفاده میکنن برای, برای یا دودی و میدونم فلان و فلان و فلان بل رسول الله علیه و سلام چرا که من می‌پوشونم میان به خانه عبو بکر صدیق رضی الله عنه حالا روایت‌های ضعیفی هست روایت‌های ضعیفی که انقطاع درش باشه ولی اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلام مشکین جمع شدن دور بر خودشون شاید خیلی وقت شنیده باشید مشکین جمع شدن و حالا آیاتی از سوره یاسینم تلاوت میکنن که بله رسول الله صلی الله علیه و سلام از خانشون بیرون اومدن دیدن که مشرکین او را محاصره کردن خاپی را برداشتن که صورت مشرکی پاشیدن و گفتن چی؟ جعلن به نیدیم سردم و من خلقه هم سردم این آیاتا و میکند و رسلا صلی الله علیه و تنها او را ببینند رسلا صلی الله علیه و تنها میره بند و حجرت خوشون آغاز میکنن این روایت ها عطاقی ندارد صحیح ندارد الا غیر از انتقاط آموزشال بودنش و, و ضعف در اسناد، الله دیگر به تو که چوش هست. و این هم بگم از قویت تذکر ما درباره سیاریاتی فزیل کننده نییم. ولی از جمله این آیات، مثل هم بالفرض یادمون هست وقتی الله دو ذکی موتورو بر می داشیم یا ماشین گوییم آماده شیم، داداش هم میگفت که میگفت که جلو پلیس دختری نمیدنم وانم و ندیگی ترودی. همین آیه رو بکود و جعلم غی نهییم و فدیم و خلفه هم ساده. دیگه بی خیالش. این آیه استفاده ازش در این چنین جاها اصلا هیچ اساسی هیچ مستنهدی نداره و خودتون راحت بکنید از این توسل به این چنین آیات و از اعتماد به این روایتا خب ما انکار نمی کنیم بر این که قصد قطع رسول الله صلی اللہ علیه وسلم داشتن ما این انکار نمی کنیم ولی که این حادثه به این شکل که بیان جلوه به خانه رسول الله صلی علیه وسلم جمع بشن و بعد خاکو قرض بکنن و سرار بکنن در حقیقتشون ما ادواتو قبول نداریم ولی کل اصل قصد قتل رسول الله صلی علیه و در خود آیات آی قران و همین قروب کذین کفلیت و یقتل و ایشی تر شده او یقتل او ایشی تر شده هرچند که ما درباره اش روایتای صحیح خب رسول الله صلی الله علیه و سلام وقتی که قصد هجرت میکنن جایگزین خودشون جای, جای خودشون علی نبی طالب را می گذنه خطشن که باید درش درش هد روایت درش درش ولی که علامه اعلام ابن حجر تحسینش میگه که میتونه به درجه حسن برده چون از طرق متعدد اومده با اثانوید مختلف دیگری شاید به درجه حسن برده ولی کن اصلش ضعیفه این که رسول الله علیه وسلم جای خودشون را علی گذاشتن و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه تا اینکه مشرکین ما که رسول الله علیه و علی وآلہ خرار کرده و قصد حجرت داره الان شاید بارا به همین روایت استدلال میکنیم و ان شاید یکمی بار سلش میکنیم بیکن الان بریم الان چطور شد از شد بحث خود آغاز شد وحث خود اصاف حجرت رسول الله صلی الله علیه وآلہ اونسان دار که در روایت عایش رضی الله عنها داریم در صحیح بخاری چینی میگید که ما نشسته دیگیم در خانه خانه خودم و خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و آله تلزی آمدند سوره پولیسنا پوشنده میدان ابوبکر صدیق در اوقات شعر گفت که پدر و مادرم فدایا چلوات ای ای رضوان الله چی چیز شده در این ساعت از روز بیه من از ما والله ما جا به في هذه الساعه الا امر قال رسول الله و قد كان في فؤادنا له فدخل. رسول الله آمد اجازه گرفتن و ورده فضله ده ورده مندر شدن رسول الله صلى الله عليه وسلم باوكا شدخ من يات اخرج من من عندك منكس منكس انك نذتها ثنا بيرون بيرون كونني از اون كونه ميخام يك امر رابهت بگم اوكا رسول الله انما هم اهل بابي انت يا رسول الله يعني فدانا خدايت فدر بشه این ها خاناری این هم ترسه چون عایشه رضی الله عنها با ازدواج رسوله صلی اللہ علیه و سلم در اومده بود رشاد خیلی ها تعجب که چرا مثلا عایشه سردیسه مثلا اینکه نبکزیلت نزل رسوله صلی اللہ علیه و سلم در ربایت ها یکی از اسباب همینه که عایشه رضی الله عنها یعنی اطلاف محبوبیت عایشه یکی بخاطر اینکه دکتر بزرگتر رفیقه شد یکی از اوائل یا از اولین دخترانی هست که در اسلام دنیا اومد. فدر مادرش مسلمان بودن. از همتایانش هیچ کدومیشون پدر و مادرشون مسلمان نبودن و مسلمان زاده نبودن. مگر عایشه. عایشه تاث مسلمان زاده بود. پدر مادرش مسلمان بودن و اولین کسی بود که در اسلام دنیا اومده بود. این مكانته داشتن عایشه علاوه بر خوے خوے ایستادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هم جواریشون و فتن اخلاقشون ادبشون معرفتشون همه اینها جز اسبابی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بناحب یشب بشادرسن الله این بحث را بزنیم کمال خاصیه بود خب اگر بگذریم بون حقیت شما دیتی بیرون که من با رسول الله صلی الله علیه و سلم کار دارم اگر بگذشید میفانه که زادنامه هست چنین نمیدونی است یا رسول الله قراره که من هم صحبتت بشم؟ قراره که من هم در روایت مدید، بعد رسولایت آسان می بید برد آری آیشه رضای اوانها در روایت دیگر می بید می بید دیدم پدرم وقتی دی که رسولای صلی اللہ ازم بهش گفت آری که تو همکفرم هستی در این هجرت دیدم که ابو بحر سبتی اشک میرید از خوشحالی یعنی می بید که من که هنو ندیدم از خوشحالی که اشک گریزه عشق داره می‌ریزه که این چنین مكانت در نزد الله داره که خداوند او را برگزیده که هم صحبت مصطفی الله علیه و سلم باشه یعنی خیلی مکانات، او خیلی فضیلت خیلی رفیعت یعنی خیلی شخص مومن و متقی هست که خداوند انتخابش کرده با هم صحبتی و بهترین خلق خداوند یعنی هم صحبتی هم جواری رفاقت بیشتر از این رفاقت و بحث اینا ممی رفیق قدر هم رو بدونند چیزی که بین خود دون هست که انتقالش دیگه سر هم دیگه رو فکرم بکنن این مسئله حالا بحث انقلاب در این مسئله ما حساب می کنیم ازش از بحث این که رسول الله علیه و سلم میاد یعنی سر قضیه با یک نفر فامیل دیگه وقتی که سر هست بین دو نفر دیگه به سومی چهارمی نگن اگر در کرد به می گفتی دیگه چارمی هم خود به خود انتقال پیدا میکنه خب حالا این بحث بحث بحثمون نیست دیگه نالا. بحث ابو بکر صدیق با چه جوری اول دست یک نیازی به رسول الله دو تا شترون بوده دو یک دو تا شتر دارن یک از اینو صلی الله علیه و سلام داماد بشه داماد اضافه شد اول پولش با پول بله یک از اینا رو برمی دارم مفتی مجلینی میخوام خب رسول الله صلی الله علیه و سلام یک شتره می خره عایشه بی بیات ما هم شترو فراهم کردیم با وسایل و اون چیزایی که نیاز بود اسما قصهش شو انشالله سعی میکنیم که الان در این جلسه هرچنکه جاش نید ولی که بحث اسماء آیشه میگی از اسماء یا برد دختر یا برد وقتی که شطرها را آماده می کرد کمربندی که داشت اون که داشت کمربنده که آدم معمولا قصصه اون خانمهای قدیم بچه هاشون به،, به کمر خودشون میبرند اون کمربندشون اون پارچه‌ای که به کمرشون بسته بود رو پاره میکنه و غذاها رو آماده میکنه و و می‌بنده حواله غذا و طعامی که نیاز داشتن و اینجا حتی آش میلید و به که سمیا غذا النطاق یا غذا النطاقین به خاطر هر کسی که اسمش گذاشته شده صاحب نساق صاحب تمربند نه یک تمربند دو تمربند آنها عمل کارت بود این بحث این اهمیت کمربند به اینجا میدونم لیکن این کمربند غیر یعنی یک کمربند دیگر هست و عزتش میبینید من این رو بهتون میگم قصه خیلی جالبی هست در صحیح مسلم از اصما بن من میخوام امروز بحث اینو رو بکنم بحث شهامت جرأت. یعنی الاغیر از شهامت جرأت رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در قروب حجرت از بحث این زنانی ای که این زنانی ای که زیر دست رسول الله صلی الله علیه و و سلم بزرگ می شدن و اون مردی که الله ساخته شده بودن برای تربیت اینا چه زنی بود اسماء بنت یزرک رضی الله عنه عبد الله بن زبیر که فرزند اسماء بن یزرط است وقتی که خلافت بهش وا گذار میشه یا ها بهش بیعت میکنن بعد الان میاد حجاج میثب و توسط عبدالملک بن مروان میاد طبط توتیه هایی میتونه محفظ بشه که حکومت اسلامی در اون روز که به عزاده بودن الان مردمی که به عزاده بودن اون به عزاده بشکنه و توتیه بکنه و خروج بکنه بر عبدالله بنزوی حالا قصدش اینه که من خاملوب به شاهد رو میخوام بگم بحث دوازداتون بساقین اصما بن طبیبت رو میخوام بگم درعت و این زن این زن کسی بود که وقتی که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم رفته بودن به غار سورد، بودن تنها برده بودن اونجا، اصما کسی بود که غذا را به کمربندش میبرد و میبرد به نظر اصلا بدونه که از کسی به جو جرعت و اون اینجا، حالا ببینید جو و شهامتش، وقتی که حجاج رو نوی میاد و جلومش و گروش مییسه. عبدالله رزو برشین این میگید، یا ای آمه، ای مادرم، میدونی که فرزندانم به بهم پشت دادن مردم هم به بهم پشت دادن خیانت شد. شده خیانت ای, ای مادر حالا پسر مادرش بیم بزرگی دره رجوع فرز. رجوع می‌دی به دوستو به بزرگ اونم کسی که زیر دست رسول رسل خدا در مکه تربیت شده و دکتر علاوه قضیه هست میاد باش مشورت میکنه این مادر من چه کار بکنم حرف خیلی جالب می‌زنه میگه ای مادر من نگاه بکنید ای کاش این مادر پیدا بشه یعنی یک روز انسان به خودش میگه که این چینین مادران کمربند همت ببند نه هیچ یک فرزندانی رو بکنن چی گفته فرزندش گفت ای مادر یا اینکه تو بر شری که مردم از برد پشت دادن بذار مردم از شر راحت بشن. ای مادر اگر بر شری بذار مردم از شر راحت بشن و اگر بر حقی بذار جلو جلوی الله بیای و بر حق پشته بشی مادر نترس نه تو تنها فرزندان دلش همش بهش پشت دادن تفرش. تنهاس کسی همراهش نیست همیاری نداره ولی که مادر سر سفت سختی داره زن زنا باید بیشتر باشه معلومه زحش حمات زنا همپره ولی این پشتوانه این ایمان این اخلاصه این قوت قلب این تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلام این زن انجلی سر سفت سختی میاست میگه می ای مادر بیست بی خیانت نکن ای مادر بیست بی که تو بر حقی ای مادر قوت تکاپو داشته باش بگم که اگر مردم بهش پشت دادن الله همیار تو الله هست که تو را نصفت بده بله عبدالله اونو در محبره مکه به اعدام میشه, میشه و اونجا بسته میشه به دار حجاج یوسف میاد نزد اسما به عبیبه میاد نزد اسما و میبید ای اسما برو جسد فرزنده تو بردار با اون شخامت و اون جرعتش میسه حجاج یوسف که هزاران تن از صحابه را پشته می اتفاقات قلب و کمال شما این زن یک زن یک زن ارزش الان میلیون ها مسلمان امروزی رو داره می سجده حجاج یوسف از می حق مالک است و میگه نگاه کنید بحث حق حق الله و برای حق خود انسان حق خودشه برای اسلام بحث دفاع از اسلام بحث از دفاع از دین بحث از الله اسماء انت عباد جلده حجاج یوسف می هست میگه میگه فکر کردی من هر هم یا یک زنی کچه و خیابونی هست این زن مؤمنه میخواست بگه که من با دیگه ترس میکنم. فکر نکن که من از تو امثالتو میترسم. ترسم ترس از الله از اللهه میگوید فکر می کنی که من کی هستم من بدان که صاحب نطاقینم دو کمربند داشتم یک کمربند رو فرزن نمی به و کمربند دیگری از غذا را در اون قایم کردم، و میبستم پشتش تا بگرم به نظر پدرم و رسول الله صلی علیه وسلم به هنگامی که در غار, غار بودن را خودشون اونجا پناه داده بودن بله این عرضش این زن این زن بالا و بزرگاری که اینجا از ابتدای هجرت میاد و زاد و یه سفر رسول الله صلی علیه وسلم آماده میساده در و اونها رو محیام میکنه برای سفر کردن حالا سن اینجا انشاءالله متوقف بشیم چون کاملش بکنید سبحان الله و الحمد لله و و